چون در امضای کاری متردد باشی آن طرف اختیار کن که بی آزارتر با مردم صحل خوی، دشخار مگوی، با آنکه در صلح زند جنگ مجوی. تا کار به زر برمیآید جان در خطرف کندن نشاید. چو دست از همه حیلتی درگسه است، حلال است بردن به شمشیر دست.